رخداد نادرستی نظری های نژادی هویت تاریخی ایرانیان از دیدگاه انسان شناسی به نام خدا با سلام! خدمت شنوندگان گرامی همراهان صدای امید برنامه برابری از آدرس اینترنتی www.sedayeomid.com در خدمت شما هستیم. در قسمت نوزدهم برنامه برابری در خدمت شما هستیم به همراه جناب آقای مهر گرامی عایش. تا برنامه 18 هم ما شروع کردیم از نظریهایی که در مورد خلقت در مورد نظریه طبیعی به جز نظریه داروین و نظریات دیگه خیلی خلاصه پرداختیم ولی در نقد نظریه داروین که ستون پاییه اندیشه مدرنیت محسوب میشه و اجازه نقد اون هم در سپهر اندیشه مدرنیت داده نمیشه پرداختیم و دلایل و همچنین نقدهایی که بهش وارد هستش رسیدیم به یک مسئلهی که آیا واقعا در علم زیستشناسی که جناب داروین هم از این علم و از موضع این علم نظریه تکامل طبیعی رو تکامل انواع رو مطرح کرد پرداختیم که آیا اساسا این علم دارای قانون خاصی است آیا یک قانونمندی خاصی داره که به نظریات اسمارت رسیدیم که ایشون معتقدن که چنین قانونی قانون خاصی بر شناسی حاکم نیست او معتقد بود که اگر مثلا در یک مسئله طبیعی به طور, مثل... به طور مثال جوش آمدن آب در یک درجه سانتیگراد یا یک درجه سیلسیوس اگر یک قانون طبیعی هست ولی برای مسائل زیستشناسی چنین قانون مسلم و مشخص و مبینی وجود نداره اگر هم هست مجمل هست به قول آقایون اصولی حالت مبین و تبیین شده نداره جناب ایان مهره عزیز زمین سلام که می فرمایید گرامی ادامه مباحث و همچنین معرفی که خودتون در واقع داشتین از داروین و نوع شاکله فکری و نوع نقدی و چرایی نقدی که به ایشون در واقع وارد هست مطالبی داشتین که یادم هست که تا به حال اجازه و وقت و فرصتش فراهم هم نبود و در این فرصت مطرح بفرمایید خواهش میکنم با درود بر شما آی دکتر محبی و شنوندگان گرامی تو این نشست ها بسیار استفاده کردیم از وجویش های حضرت عالی. ما بحث رو به این صورت آغاز کرده بودیم که نقد کلی داریم به نظری داروین از هر منظری میشه به این نگاه کرد فرموش که شما الان فرمودین بله زیزشناسی از علوم طبیعیه مثل معادلات ساده فیزیک مثلا نمیشه گفت که صوت آزاد از معادله و دو منهای و صفر برابر است با دو ایکس میکنه و ولاغیر. علوم زیستی با مایتزی سر کار دارن با موجودات زنده سر کار دارن اما اینقدر هم بی قانون نیستن های ساده به هم می پیوندن های پیچیده رو درست میکنن تو علوم زیستی به ویژه تو ژنتیک این معادلات پیچیده رو هم اثر میذارن و اثر چندتا تا پیچیده یکی از نمودهای زیستی رو نشون میده. یعنی ژنها توالی اسیدهای آمینه روی اون نردبانی که که یک و واتسون اونو کشف کردن و به این صورت توضیح دادن. اینا همه قانونمنده. اما رخدادهایی که رخ میده تصادفیه. یعنی وقتی که دویست و پنجاه میلیون اسپرم میرن به سمت تخمک تصادف باعث میشه یکی از اونا برسه ولی بله. قانون خاصی نیستش که با. باشه هنوز شا... کشف نشده اما به هر حال یعنی اگه اون نردبان دی ان ای میشکنه و دوباره صورت جدیدی ساخته میشه و یه جهش رخ میده اون اسیدهای آمینه تعریف شدن اونجا. اما اینی که به چه حالتی بشینن این دیگه با محیط و هزار چیز توش دخیل در این حال من میخواستم از شما اجازه بگیرم حالا که ما میگیم ما واقعی داروین نقد داریم تو این یکی دو نشست که مونده پیش رو که ما میخوایم دیگه بعد بعد از دو سه نشسته دیگه بریم به سراغ اصل مطلب تبار انسان ها روشن کنیم برای شنوندگان که ما چه نقدی به ایشون داریم من یک کوتاه این روند کاری های داروین رو خیلی خیلی, خیلی کوتاه بررسی کنیم. آی داروین در قرن خدمتتون بگم 19 می میزیستن حدود 1810 تا 1880. هفتاد و 73 سال زندگی کردند. بریتانیایی بودند. از اعضای انجمن سلطنتی بریتانیا بودند. ایشونو شاگرد مکتب رابرت اسموند گرانت میدونن استاداشون ایشونو معرفی کردن تا یک درسی یک سفر دریایی اکتشافی با آمریکای جنوبی همراه ناخدا رابط فیتس باشه این سفر پنج سال طول کشید طی این سفر اینها سنگباره هایی رو که پیدا میکردند میفرستادن به بریتانیا خدمتتون بگم چارلز لایل که از دانشمندان شناخته شده اون قرنه این یک مجموعه‌ای رو تشکیل داد یک همه برگزار کرد بر پایه اون سنگواره هایی که داروین براشون فرستاده بود و برای استادش فرستاده بود و لایل اینو ترتیب داد یک نتیجه گیری ساده کردن از این مشاهدات خیلی ساده در یه جمله گفتن گونه های منقرض شده که سنگواره هاش رو داشتن می دیدن با گونه های فعلی همان منطقه در ارتباط مثلا یک نوع مارمولک رو مشاهده کرده بودن در یک جزیره سنگواره همون نمار مورکرم پیدا کرد مقداری جمجمه تا اندازه انگشت های دست و پا تفاوت داشت با اسکلت نمونه موجود اما تقریبا همون بود یعنی متوجه شده بودن که این سنگواره ته مثلا زمانی به این شکل یک کم تغییر کرده این نزیجی بود که از اون گرفته بودن چارلز لایل یک کتاب معروفی داره به نام اصول زمین شناسی اون چیزی که میشه از این پجوش هایشون دریافت اینه که خودش معتقده که هر نوع موجود زنده ابتدا در یک مرکز رشد میکنه و از آن نقطه پراکنده میشه. بعدا که واگنر اون بحث انشقای قاره‌ها رو مطرح کرد این بیشتر تونستن اینو توضیح بدن. یعنی اگه یک نوع سوسمار در آمریکای جنوبی و آفریقا تقریبا مشابه سنگواره پیدا شدن اینا میگفتن خب. از یکی در آمریکای جنوبی پدیدار شده یکی در آفریقا بعدن که متوجه شدن قبلا یعنی در زمان حیات این سنگ ها. این قرا هم چسبیده بوده است دیده متوجه شدن که پس این حرف تقریبا میتونه درست باشه شما در نشاسته گذشته مطرح کردین که برخ دانشمندان اسلامی این نگاه روشنگرانه رو به این موضوع دارن که این آفرینش دفعی و یک بار نبوده مکرر بوده بله اینها هم به این نتیجه رسیده بودن که پس از این پجویش پیدایش انواع جدید جریانی پیوسته و یک نواخت در طول تاریخ زمین بوده است. یعنی اگرم آفرینشی بوده این مکرر بوده تکرار شده این به نظر درست میاد با یافتا ولی بله اصلا منطقه برخی از اندیشمندان جدید حتی حوزه روشنفکری دینی هم هستش که اصلا اصلا حتی خلقت هنوز هم ادامه داره. ادامه داره. از اول یه بل چیزی که ادامه داره همون دور که مثلا در مورد وحی هم میگم وحی هم هنوز هم ادامه داره. چند نظریات جدید مثلا جناب دکتر زوش میگه اصلا وحی هنوزم ادامه داره. یه حالتی هستش که دفعه مادی نیست. یه چیزی که همه جا حضور داره. همین عالم حضور داره اون وحی اوجش بوده یه اوجی داره و الان وارد یک روند منطقی شده که این روند منطقی حالتی که بخشید هم برای وحی هم برای آفرینش جهان رو وارد یک سیر خاصی یه سیکل زمانی خاصی کرده که از این سیکل زمانی خاص از اوج به یه مرحله در واقع آفرینش تدریجی و اون تدریج همچنان ادامه داره در یک سرعت خاص سرعت خاص و در واقع مساوی و مشترک در تمام ده. زمانها یعنی بریم باورن که فرض بفرمایید اون وحی اوجش بوده و هنوز الهامات به صورت بطعی ادامه داره. داره. یافتهایی که اینا در اون قرن در آمریکای جنوبی و جزایر مختلف سر میزدن اینا متوجه شدن که برای مثال سهره های مختلف تفاوت های اندکی با هم دارن همشون سهرن هم اما یه تفاوت‌های اندکی با هم, با هم دارن اینا متوجه شدن که بنابراین اینجوری توضیح دادند که گونه ها تغییر می کنند و اما اعضای هر گونه نیای مشترکی دارن ما یک بار تو این چند نشست پیش گفتیم که آقا گوریل ها از اورانگوتانا درست نشدن شامپانزه ها نمیدونم از انسان ها درست نشدن اون گیبون ها از لیمور ها درست نشدن این حرف اصلا غلطه همه اینها یک نیای واسط و مشترک داشتند که بعد شاخه شاخه شده هر کدوم روند تکاملی خودشون رو پیدا کردن اینا به صورت ساده اونجا تونسته بودن اینو رو توضیح بدن که گونه ها تغییر می کنند اما اعضای هر گونه نیای مشترکی مشتکیدارن بعد در دنبال همین نتایشون به اینجا رسیدن که پس از ایجاد تغییر در موجودات زنده انواعی که با محیط طبیعی سازگار گشتهاند حس می شوند نکته داره اینا فهمیده بودن یه تغییراتی رخ میده اما چون هنوز ژنتیک دانش روانشناسی این حالت امروز نرسیده بود اینا متوجه نمی‌شدن که این تغییر چجوری جوری رخ میده اما اینو فهمیده بودن گفته بودن حالا این تغییرات که رخ میده انواعی که با محیط طبیعی ناسازگار گشتهن می شود بنابراین معتقد بودن که اون تغییرات تصادفیه اتفاقا هم درست فهمیده بودن با اینکه پایه‌اشو نمی‌دونستان یعنی ممکن بود این تغییرات نسبت به اون محیط به مثبت باشن یعنی تغییرات خوب چون تغییرات خوب دسته بندید چون خوب و بد اینجا معنی مطلقی نداره نه خوب خوب در واقع هم نسبی و انتظاییه. شما ممکنه که تو محیط آبی جهش جنی باعث بشه که پره لای انگوشتای پاد درست بشه خوبه بری شنا ممکنه هم برعکس باشه. برای اینا ها جلده اگر توی محیط خشک باشی و جهش باعث بشه که پره لای پاد درست پشه اون به درد نمیخوره و تو اصلا نابود میشی نمیتونی اونو به نسل بدید منتقل کنی بنابراین دیگه دیدم دیده هم نمیشه در دورمارش گفته بودن انوایی که تغییراتشان آنها را با محیط طبیعی سازگارتر کرده هست جای اون گونه دیگر رو میگیره حالا یک مسئله اینجا مطرحه اینه که ما یه بار صحبت کردیم گفتیم زمانی که از جهان هستی صحبت میکنیم انسان ها میگیم ای آقا چرا پس حالا آدم فضایی ندیدیم ما 50 سالو داریم امواج رادیویی میفرستیم. بله از, از طریق دو تا سفینه وویجر 1 و وویجر حتی مارینر هم ظاهرا از سال آینده چون از منظومه شمسی داره خارج بل. میشه احتمالاً اون هم در واقع امواجی رو به فضای بین کهکشانی ش... بین ستاری بین کهکشانی که نمیتونه بل. فعلا بل. بین بل. ستاری. در حال فرستادنه دقیقاً بله همین امواجی هم که آقا دکتر امواجو دکلای رادیویی مون دارن میفرستن اینا تو فضا هم تا بی‌نهایت منتشر میشه بله با سوالت نور حرکت میکنه. یعنی الان یک کره دور ما به شاعه پنجاه سال نوری داره امواج رادیویمون میره. تا این محدوده کره به شاعه پنجاه سال نوری رسیده. خب جهان چه اندازه است؟ جهان که کروی نیست. اون چیزی که دانشمند فیزیک گفتن. اما فرض کنیم که میگن شکلی بشخابه جهانی که ما هستیم توش. حالا فرض کنیم که یک کره هم باشه ما گفتیم قطر این حدوداً 13 تا 18 میلیارد سال نوریه. درست. یعنی یک کره به اندازه حدوداً مثلا شما فرض کنین 8 میلیارد سال نوری شاهشه ما تا حالا تونستیم توی یک کره کوچولو توی این به اندازه 50 سال نوری بسیار کم در اصلاً اصلاً یعنی شما هیچ یعنی بخوای اشارش رو بذاری یک صفحه والله، خیلی متشکریم ما بحث رو تا اینجا نگه داریم. قسمت 19 هم چون به پایان رسیده، شنوندگان گرامی رو تا آغاز قسمت 20 به خداوند متعال می‌سپاریم. خدا رو نگه نگهدار